ba <sighs> بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان و من أمرنا على ما يكون و نؤمن به و عليه و نستغفره و و نعوذ به من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا و نصلي و نسلم على سيدنا و نبينا ابالقاسم المصطفى محمد <تصفيق> يا بين ولاسيما بقية الله في الأراضين السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا عمة ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوسيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این ایام شریف به پارسایی و پریزکاری و ذکر و شکر خداوند در همه احوال توصیه و سفارش میکنم امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب تقوا و تخلق به اخلاق الهی و تحضیب نفس انایت و کرامت بفرماید در ادامه مباحث خانواده به اینجا رسیدیم که یکی از اصولی که در اسلام بر آن تاکید شده است زمین سازی برای ازدواج جوانان و تمهید مقدمات برای ازدواج هست جامعه اسلامی جامعه ای است که در آن روح همیاری و همکاری و کمک به کارهای خیر موج میزند. تکلیف به این که کمک کنید تا دیگران در آسایش و امنیت باشند هم یک قانون عام است در همه کارهای خوب که خداوند فرمود و تعاوند و البر تعاون و, و تقویر جامعه اسلامی، جامعه ایمانی از چنان روح همبستگی و شفقت و مهربانی برخوردار است که همگان به یاری یک دیگر می آیند و برای انجام خوبی ها و تحقق ارزش همدیگر را کمک میکنند این قانون تعاونو علل البر و تقواست این فایده فقهی و عامه است که همه ما فرا خوانده شدیم که به کمک دیگران برای انجام کارهای نیک و خیر بشتابیم و در این میان در خصوص مقوله ازدواج با اون آثاری که تشکیل خانواده دارد ملاحظه کردید و در خطبه قبل عرض کردیم سه گروه به این تکلیف کمک به تحقق ازدواج و تسهیل و روانسازی ازدواج توصیه شدند یک قانون عام داریم به عنوان یک تکلیف کفایی عام عموم جامعه آهاد مردم و همه کسانی که می توانند در تسهیل ازدواج و زمین سازی تشکیل خانواده کمک کنند، موذف شدن به شکل استحبابی و احیانا گاهی الزامی و وجوب دوم به طور خاص حکومت و دولت معمور شده است به انجام مقدمات و تمهید زمینه ها برای ازدواج جوانان و سوم به طور خاص خانواده و پدر و مادر موظف شده اند به اینکه زمینههای ازدواج به موقع و درست را برای فرزندان خود به وجود آورند بنابراین در قضیه زمین‌سازی ازدواج مثل بسیاری از کارهای نیک دیگر این سه تکلیف عام متوجه عموم جامعه یک دو متوجه دولت و مسئولان و سوم در مواردی از جمله در بحث زمین سازی ازدواج خانواده اینها سه قاعده فقهی و مترتبند که در روایات با آن تاکید شده است در قضیه تکلیف عمومی جامعه به اینکه دیگران را تمهید بکنید تا به موقع ازدواج بکنن ادله قرآنی و روایی و اشاره هم به سیره در خطبه قبل داشتیم این خطاب ام در که و ان که حل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و عماءکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم این خطاب عموم جامعه است هر کسی که امکان دارد و در توان اوست باید برای ازدواج دیگران کمک بکنه وساطت بکنه تمهید مقدمات بکنه این یک کتاب عامه. و در زیل آن ملاحظه کردید روایات متعددی داشتیم که در خطبه قبل عرض کردم که بیان ثوابهای پنگل در آن روایات شده بود برای کسانی که گامی برمی دارند. تا جوانان به موقع ازدواج کنند قدمی برمی تا خانواده های سالم تشکیل شود و در سیره شخص پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اون قضیه را نفت کردیم که پیامبره برخت... که جوان انصار که جوان مهاجر که در مدینه ازدواج بکند اینها عدله است که نشان میده که ما به عنوان یک جامعه اسلامی هم باید به معنای عام اهل نیکی ها باشیم کمک بکنیم به انجام خیرات و خوبی ها و در مقوله ازدواج هم هر کسی به فراخور توان و امکان خود زمین سازی کند خب در اینجا ما نمونه های را از این کمک به امر ازدواج به عنوان یک وظیفه همگانی و اجتماعی و فرهنگی برمی شماریم اولین و یکی از نمادها و نمونه های کمک به دیگران برای ازدواج وساتت و شفاعت این رو اشاره کردیم که ذیل اون آیه شریف شفاعت روایت وارد شده که اقدام به وساتت میان دو نفر غیر متزوج برای تحقق ازدواج و تشکیل خانواده مصداق اون آیه است که من یشفع شفاعه حسنه یک له نصیب منها مثلا آیه به شمار آمده البته وساطت و میانجیگری برای این که به شکل درست خانواده تشکیل شود دارای این فضیلت هاست و از مصادیق مهم تعاون و البر و تقوی و آیه شریف من یشفع شفاعتن حسنه است در خصوص وساطت که در سنت و سیره اشاراتی هم به این مسئله شده است هم در ها... کارهای عام خیر و هم در خصوص ازدواج البته دو سه نکته ضرورت داره که توجه بشه چون گاهی میانجیگری و وساطت اگر با اصول درست نباشه ممکنه نتائج عکس به بار بیاره وساطت درست میانجیگری در کارهای نیک و به خصوص در مقوله ازدواج این یک امر بسیار پسندیده ایست کسی افرادی وساطت بکنن میان دو خانواده برای شکل گیری یک ازدواج خوب زمین اینکه محاسن فراوانی دارد و اون ترغیب ها در باب آن وارد شده اما چند نکته را اینجا باید دقت کرد تا آسیب زده نشود این میان جیگری یک این که کسی که میخواد وساطت بکنه برای انجام یک ازدواج و تشکیل کانون خانواده آینده را ببینه روحیات طرفین را دقت بکند سهل انگاری نکند و شرایط لازم برای یک ازدواج پایدار را مراقبت کنه گای آدم ها وقتی که می میان میانجیگری در کار خیر یا ازدواج این ثواب ها داره بدون دقت لازم اقدام میکنند و این نتایج زیانباری برای بر آن مترتب میشه وساتت باید با آداب و اصول اون باشه خانواده ها را بشناسه روحیات و خلدیات را دقت بکنه آینده اونها را در همه جهات توجه بکنه و بعد اقدام بکنه اقدام نسنجیده در وساطت میان میانجیگری منشه مذرات و خسارات زیادی برای خانواده ها می شود این یک دوم گاهی وساطت و در کار خیر یا در ازدواج انجام می شود. ولی طرف با اصرار و الها به گونه ای که خود دو خانواده و دو جوانی که قرار ازدواج کنند احساس تحمیل می کنند این نباید باشه در ازدواج بعدها خواهیم گفت اون علاقه طرفین و خواسته طرفین موجب شکری ازدواج پایدار و خانواده سالم و انسانساز می شود نباید در میان جیگری به چیوه هایی که ایهام تحمیل و اجبار در آن هست توسط جوست و سومم اینکه در میان جگری کار خیر باید صبور بود و تحمل کرد، اصولاً در این میان جگری ها دای هم به یک مشکلی بر میخورد. در اونجا به انسان سخنی میگن تنه ای می انسانی که وارد این کار خیر می شود باید تحمل این رنج احتمالی را هم داشته باشد این یک نمونه از اعانه بر خیر و تشکیل خانواده و زمین سازی ازدواج بود وساطت، میانجیگری و انجام مقدماتی برای اینکه که خانواده ها به هم نزدیک شوند و ازدواج درستی محقق بشه اصول اون این بود که آینده را ببیند دقت‌های لازم بکند از اجبار و اکراه و تحمیل پرهیز بکنه و تحمل سختی مسیر را داشته باشد این یک نمونه دوم از این آنه برخیر و کمک به تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه ارائه مشاوره و راهنمایی است حالا مقوله مشاوره و راهنمایی در دانشهای جدید هم توسعه پیدا کرده و به اون هم کم و بیش توجه میشه و البته ما اینجا باید تأکید کنیم که مقوله مشاوره یک مقوله کاملا فرهنگی و دینی است دانش و علم روانشناسی و مشاوره جدید با آنکه که دستاوردهایی دارد، اما در مواردی هم در تحت تأثیر و سیطره تفکر غیر اسلامی و مادی است. جریانهای مشاوره، و و رشتههایی که به آن می پردازند، انسانهایی که مشاوره می دهند، باید دقت بکنند. که اسلام در باب قوانین و اصول و ارزشهای مشاوره در همه امور و ویژه در مقبوله خانواده و ازدواج یک سیستم داره یک نظام مترقی داره و انجام مشاوره و راهنمایی و ارائه راهنمایی و مشاوره به خانواده ها برای سلامتشون برای پریز از اختلاف برای زمین سازی ازدواج این امر پسندیده ایست گاهی هم دستگاه های ما به این مقوله اقدام میکنن اما در مواردی هم دقت لازم در قواعد و اصول مشاوره نمیشه مثلا گاهی تو منطق غربی و تفکر غیر الهی به راحتی میگه شما این اختلاف دارید امکان سازش نیست راهش طلاقه در اسلام این نیست در اسلام آخر و دواء الکیه آخرین ای که ناچار باشن میگه طلاق اصل و بود بر صلح و صفای خانواده گذاشت و خیلی از مقوله های دیگه که در مشاوره باید توجه بشه این هم نمونه دوم نمونه سوم از اعانه در تشکیل خانواده های سالم و پایدار فرهنگسازی است. در جامعه اسلامی همه باید تلاش بکنند روحانیت، دانشگاه، نخبگان همه کسانی که نفوذ کلام دارند، ها برای اینکه خانواده را بزرگ نشان بدهند. تشکیل خانواده را جذاب و ضروری نشان بدهند این اصل بزرگ مابونی فل اسلام بنا اون من از زباد یا من تزویج این را دقیق فرهنگ سازی بکنند متاسفانه فرهنگ تشکیل خانواده در موقع مناسب تزلزل پیدا کرده تحت تاثیر رویه های فردگرایی لذت های افراتی و فرهنگ ناروای غربی مشاهد خواهش این اصل و عدم توجب این اصل مهم اسلامی هستیم یکی از مهمترین کارهای نیک و زمینستازی برای ازدواج اینه که رسانه ها رسانه های فرهنگی هنری نخبگان فریختگان تلاش بکنن برای اینکه ازدواج راحت نشان داده شود جذاب و مهم نشان داده شود رسالت خانواده و اون نوع ای که بر ازدواج مترتبه اینها تبین بشه برای زمین سازی ازدواج های سالم و پایدار چهارمین نماد همکاری و همیاری برای تشکیری خانواده های خوب ازدواج به موقع جوانان کمک های مالی و اقتصادی است اون چیزهای قبلی مربوط مشاوره بود راهنمایی بود کمک های فکری بود اقدامات فرهنگی بود برای اینکه جامعه از ازدواج به موقع استقبال بکنه و مواجه با تخلیر در شکری خانواده نشود اما چهارمین نماد این اصل و مثلاق اون کمک مالی و اقتصادی است از مهمترین اقدامات اینه که آدم‌ها به شکل فردی یا به شکل مؤسسات خیریه یا در قالب های خوب تلاش بکنند برای اینکه زمینه ازدواج هم بشه در امر جهیزیه در امر برگزاری مراسم خوب و مناسب در مقوله مسکن و در اشتغال اینا مسائل مهمی است که هم وظائف اساسی دولت هست و هم عموم جامعه میتوانن به شکل صندوق های خانوادگی با در خیلی از شهرامون صندوق های است کلی گره گوش برای مردم صندوق های قرض خانوادگی در امر ازدواج و بسیاری از مسائل به داد هم می‌رسند به موقع به فریاد هم می‌رسند مؤسسات خیریه مردمی که هزاران از این قبیر مؤسسه در کشور هست یکی از پایگاه های مهم کمک به امر ازدواجه و تمرکز اینها بر پسیل ازدواج در همه عباد و کمک‌های مالی و اقتصادی مصلوق دیگر از این و انکه عیاها منکم و صالحین من عبادکم و امایکم هست مصلوق دیگری از اون آیتی تعاون و علا البر و تقباس همه اینها دهنده این است که اسلام با دقت با جامع بینی با کمال زرافت همبستگی اجتماعی تشکیل خانه‌های سالم تأمین نیازهای روحی و جسمی همه جوانان را مد نظر قرار داده و اینا شاخص جامعه اسلامی است جامعه اسلامی جامعه ای است که خانهای سالم داره ازدواج های به موقع داره و از اختلافات بنیان برفکن خانواده مسون است خدایا به ما توفیق عمل به فرمانهای خودت و اجرای قوانین متردی و آدی اسلام را در جامعه و خانواده هامون انایت و کرامت بفرما اللهم مرفر للمؤمنین و المؤمنات و و المسلمات بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطاینا که الكوفر فسفل ربك و انحر انا شانع هو العبتر الله العلي العظيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله علی سیدنا ابوالقاسم المصطفى محمد وعلى الینا امیر المؤمنین وعلى صدیقته الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه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 احساسة العباد واركان البلاد وعباب الإيمان وامناء الرحمن صلواتك عليهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله اوصییکم و نفسی بتقوى الله در ادامه خطبه 191 نهج البلاغه امیرالمومنان و پیشوای پارسایان چنین می‌فرمایند بعد از آنکه توصیه های مؤکد به تقوا و خیشتنداری از گناه فرمودند می‌فرمایند ای گروه بهانومکم وقت بها یومکم و عشق قلوبکم ورحضو به ها ظنوبکم و داو به الاسقام و باد رو به الحمام تقویه نجات بخش است که این همه فرمان بر مهور تقوا و روحیه خدا ترسی و خیشتنداری میچرخد و از زبان اون پیشوای بزرگ صادر شده مردم با تدوا خود را از خواب بیدار کنید با تقوا از خوابها بیدار شوید با تقوا روزگار خود را بگذرانید بدون تقوا از این روزها و ساعتها عبور نکنید اشعروها حلوب کن تقوی را شعار خود قرار بدید تقوا را لباس جانتون قرار بدید تقوا را در عمق وجودتون رسوخ و نفوذ دهید و رحو به ها بنو کن همه ما مبتلای به آلودگی ها هستیم این طبیعت بشری و دنیایی ماست اگر بخواهیم گناهان را بشوییم، راه آن تقوا و خداخواهی و خیشتن سازی است و دعوه به به الاسقام همه دلهای ما مریض به گناهان است با تدوا می شود این گناهان را معالجه کرد این دردهای آدم کش را معالجه کرد و باد رو به الحمام با تدواه به سمت مرگ بشتابید. اگر بی تدوا رفتید به سمت مرگ جهان تاریکی در انتظار شماست با تقوا از مرگ استقبال بکنید انسان با تقوا با روی باز و دل آرام به سمت مرگ حرکت میکند باد رو به الحمام و رو به منعزاها ابغت بگیرید از آنان که تقوا را زایع کردند آنان که تقوا را زیر پا گذاشتن به جایی نرسیدن دنیای تباه و آخرت تباه دارند و لا یعتبرند بکن من اطاعها مبادا که شما بی تقوایی شوید که دیگران از شما عبرت بگیرند شما از بی تقوایان ابرت بگیرید خدایا به ما توفیق کسب تقوا و فرمانبری از خداوند در تمام زندگی انایت و کرامت بفرما شهادت امام اسکری پدر عظیم الشان ولی الله الاعظم ارواح فداه را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و مناسبت های مهم ماه مبارک ربیع الاول را گرامی میداریم و تبریک میگویم موالید مبارک پیامبر عظیم اسلام حضرت محمد مصطفی و صلواده پاک او امام صادق صلوات الله و سلام و علیه را تبریک عرض می کنم آغاز امامت ولی الله العظم ارواح فداه را گرامی می داریم و تبریک عرض می کنم و چند موضوع مهمم هست که فهرستوار باید به با آن اشاره کنیم یکی هفته وقت هست که برادر عزیز من هم پیرامون وقت پیش از خطبه ها سخن گفتن جای تاکید بیشتر ندارد اما همه باید بدانیم که وقت یک معامله جاوید با خداست انسان واقف هنگام وقت یک معامله ابدی با خدا میکند اثری ماندگار از خود به باقی میگذارد تا پایان عالم بر میزان اعمال قومی افزاید و فرهنگ وقف اگر به درستی اجرا شد می تواند بسیاری از مشکلات جامعه را حل و فصل بکنه البته وقف یک پدیده بشری عام انسانی است در کشورهای دیگه در ادیان دیگه در همجا وجود داره خیلی کارهای مهم با موقفات انجام میگیره. اما در منطق اسلام وقف یک پدیده آسمانی الهی دارای یک قوانین و اخلاق و فقه مهمه یک کتاب مهم فقهی ما کتاب وقف هست و اون که وابسته به وقف هست وقف یکی از مصادیق تعاون و علالدر و تقراست یکی از مصادیق مهم همیاری است یکی از مصادیق دلدادگی به خدا و معامله با خداست اون را باید مهم بشماریم اما در اداره وقف در تنظیم وقف در تنظیم اولویت های وقت البته نکات مهمی وجود دارد که هم مردم هم دستگاه ها باید به اون توجه بکنند. حقوق وقت را هم باید مهم بشمارین گاهی چیزی که موقوفه شد میگیم دیگه این حالا هر طور شد شد این درست نیست موقوفه جهات مصرفی داره که باید با دقت و وسواس به اون توجه کرد ولی زبا هم حقوق مردم هم حقوق وقت را باید مهم شمارد و انشاءالله این فرهنگ همچنان رو به پیشرفت باشه و موقوفات ما بتواند کارهای مهمی را در جامعه رتن بزنه البته مسائل مهمی مثل ازدواج خانواده اداره حوزه ها مدارس دانشگاه ها اینا چیزایی است که باید با با وقت ارتباط برقرار کنه موضوع دوم هفته وحدت هست به مناسبت ایام میلاد پیامبر اعظم شاهن اسلام که این مناسبت نمادی است برای همبستگی امت اسلام ما ضمن آنکه پیرو مذهب متردی و افتخارآمیز تشیع هستیم اما همواره بزرگان ما علمای ما مراجع ما شخصیت‌های بزرگ ما امام و رهبری معظم ما بر اخوت عامه اسلامی و همبستگی امت اسلام و دست به دست هم دادن برای احیای تمدن اسلامی تأکید کردند ما باید از این اختلافات بی حاصل عبور بکنیم و راه همزیستی درست و در کنار هم بودن برای اون اهداف بلند را توجه بکنیم و پیام انقلاب اسلامی پیام قوم پیام حوزه پیام بزرگان دین ما پیام وحدت و انسجام اسلامی است امیدواریم این مقوله در جهان اسلام و از سوی نخبگان و علمای اسلام بیشتر مورد توجه قرار گیرد موضوع سوم هفته بسیج هفته مبارک و ارزشمند بسیج را به همه بسیجیان عزیز و همه دلدادگان به اسلام و انقلاب اسلامی و بسیج مبارک و عزیز تبریک و تهنیت ازم کنم. بسیج نماد هوشمندی، آگاهی، شجاعت، رشادت، خداترسی و مقاومت در راه خدا و ایسا و گذشت برای آرمان‌های بزرگ و خدمت به خلق خداست. این تجربه بسیج با این نام جدید است. اما روح بسیج در تاریخ اسلام ریشدار و پیشیندار است ما بسیج را باید گرامی بداریم تجربه بسیج در انقلاب اسلامی ولو بدون نام بسیج تجربه بسیج در دفاع مقدس معجزه آفرید کشور ما را نجات داد بسیج را کم نشموریم همین بسیج بازسازی شد و تجربه های نوین بینال المللی به وجود آورد و امروز مشاهد مقاومت اسلامی و جبه های پولادین بسیج در امت اسلامیم که اول را به وحشت انداخته است، بسیج را باید تقویت کرد، گرامی داشت پایگاه ها و جریانات بسیج باید تقویت بشوند و حضور بسیج در عرصه علم، دانش، فرهنگ و هم کمک رسانی خدمت به دیگران یک امر مهم است که در هفته بسیج باید بر اون تاکید بکنیم و اما موضوع بسیار مهم و چهارم پیروزی جبهه مقاومت بر جریان تکفیری و ارهابی و تروریستی داعش در عراق و سوریه و بردن اینها به سمت ازمهلال تام مست این پدیده بسیار مبارکی بود که باید اون را مهم شمرد پیرامون اون تحلیل کرد و از اون درسها برای آینده امت اسلام فرا گرفت. می که مستکبرین و امریکایی ها و اسرائیلی ها و وابستگان سعودیان ها اهدافی را در این دو دهه اخیر به خصوص یک دهه اخیر دنبال می‌کردند یک این که گفتمان انقلاب اسلامی را خواستند مهار بکنند با دایش دیدن این موج انقلاب اسلامی آمدن یک بدیل قلابی ساختند تا این موج را پرو بنشانند و بر اون غلبه پیدا کنند این تقابل حق و باطل بود یک حرکت تروریستی تکفیری تند بیمنطق ساختن در برابر انقلاب اسلامی برای اینکه اسلام حراسی را رو رواج بدن ایران حراسی را رو رواج بدن و انقلاب اسلامی حراسی را رو رواج بدن این یک دوم اینها در صدد این بودن که با اختلاف افکنی مذهبی و تضعیف گفتمان وحدت اسلامی جنگ افروزی بکنن اختلاف افکنی بکنن به نام جنگ شیعه و سنی عالم اسلام را در یک از این فتنه ها قرار بدهند و سوم این که حلقه امنیتی درست بکنن برای اسرائیل و مزدوران امریکایی در منطقه و جریان و جبهه مقاومت با یورش و شورش اینها تضعیب بکنند. و چهارم زمینستازی هایی که انجام شد برای تجزیه عراق کردستان و جاهای دیگه در اون نقشه زمان بوش که اعلام شده خواهر میانه بزرگ بیستی کشور جدید با تجزیه کشورهای اسلامی بایستی به وجود بیاد خب این جریانی بود که ایجاد کردند خیلی هم خسارت وارد کردند واقعا هم خسارت های بزرگی به امت اسلام زدن به خصوص در مسائل فرهنگی ذهن غربی و عالم رو به اسلام بدبین کردن اینا اهدافی که دنبال میکردن پشوانه این جریان هم امریکا بود تاروخ می نیست اسرائیل بود و وابستگان اونها که نماد اون امروز سعودیه و افکار تکفیری که تو سعودی تولید میشه اینا پشوانه های مادی دولاری اقتصادی و پشوانه علمی و فرهنگی این جریان بود و امروز به فضل الهی این محور آمریکایی اسرائیل سعودی به فضل الهی شکست سختی را تجربه کرده و ما می‌بینیم در تجزیه عراق در تجزیه سوریه در خل سلاح مقاومت در مهار یمن و بحرین در مهار لبنان در ایجاد جنگ مذهبی که اهداف اونها بود در همه اینها این جبهه استقباری شکست کرده و به فضل خدا این شکست پی در پی اونها را تا آخر تغییب خواهد کرد شاکر خداوند بزرگ هستیم از توجهات اولیای الهی به حضرت ولیه است تشکر باید بکنیم از رهبری معظم که با درایت و هوشمندی جریان جبهه مقاومت را هدایت کردن باید سپاسگزار باشیم از مرجعیت و مرجعیت عالی عراق از حزب الله از هشت و شعبی از فاطمیون زینبیون سپاه بزرگ پوست و دولتهای سوریه و عراق و همه مجاهدان در راه خدا که گام به گام همراهی کردن باید تقدیر کرد و یاد شهدای مدافع حرم را باید گرامی بداریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد پیروزی ها نماد بسیج و هفته بسیج و رشادت شما بسیجیان عزیز است که به یاری خدا ادامه پیدا میکنه. البته در ادامه همانطور که رهبر ما از زن فرمودن باید حوشیار باشیم و معامرات و توته های جدید اونها را تحقیب بکنیم و مانع از وسوسه انگیزی ها و فتنه های جدید اینها بشیم همین روزها میبینیم سعودی ها با یاوگویی ها با بیحیائی های خودشون مرزهای اخووت اسلامی را کنار گذاشتن و این همه حرف یاوه می به خاطر شکستی که خوردن و انشاءالله این شکست اونها را از خادر خواهد آورد و نکته اخیر هم مسئله است حقیقتاً باید از مردم، نیروه های نظامی و انتظامی، بسیج و حلال احمر و همه مردم شریفی که کمک کردند باید تشکر بکنیم امیدواریم این کمک‌ها استمرار پیدا بکنه من در بازدید کوتاهی که داشتم حضور دانشجویان، حوزهویان، بسیج و قشرهای گوناگون از جوانان از سراسر کشور از شیعه و سنی حقیقتاً چشمگیر بود و روز حضور رهبر عظیم شن انقلاب اسلامی بنده هم در اون جمع مشتاق بودم و دیدیم که رهبری با چه کرامت و عنایتی در منطقه حضور پیدا کردن، امیدواریم مسئولان محترم نیروهای نظامی و انتظامی دولت و ملت و همه در کمک به مردم عزیز و شریفمون تلاش بکنن و الان وقت سختی های است که باید به داد اون مردم عزیزمون برسیم و از مردم قومم سپاسگزارم مردم قوم حضور بسیار خوب و داشتن و ما قلال عمر و بسیج و حوزه و دانشگاه و جوانان قوم را اونجا با شور و نشاط میدیدیم که در خدمت به مردم و همه مردم با همه مذاهب و فرق بودن که جای تقدیر و سفاس و تشکر داره نسألو اللهم و ندعوه بسم کالعظیم الاعظم العز الاجل الکرمه یا الله اللهم منصر الاسلام و احله الكفر و اخذل و اللهم منصر جيوش المسلمین و عساکر الموحدین اللهم مغفر للمؤمنین و المؤمنات و والمسلمات، و المسلمات منهم و اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه خدایا ما نیازمندانیم و سرزمین های تشنه ما نیازه به رحمت تو داره باران رحمتت را بر ما نازل بفرما گناهان ما را ببخش توبه ما را بپذیر خدمتگزاران به اسلام مقام معذنم رهبری و مراجع عزام را معید و منصور بدار شر دشمنان را به خودشون باز بگردان پیروزی های جبه مقاومت را شیرین تر بفرما خدایا از همه خادمان اسلام در سراسر جهان اسلام این رشادت و مجاهدت ها قبول بفرما سلام و درود ما را به محضر اولیای الهی و حضرت ولیه از ارواح نافده ابلاغ بفرما بر فرج نورانی امام هست تعجیل بفرما بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله صمد و لم یلد و لم یولد و لم یکله کفوان احد و السلام علیکم